و دائمت على دائمت على دائمت على الله و و و و بحثی که مادر فرودان در انجام قسمتی که از زن خونجته بحث خودیه در خبر واخده از شد که این بحث بدون شکه از این بحث سیار مهم و اصوله و بدون شکه که از تحصیل گذارتن بحث ها در به اصطلاح در اصول همین بحث خبر واخده و در نسبت به مجموعه معارف دینی بحث حجر خبر واحد از حجر تقریبا مالاتره این دو بحث اساسی در کل مواحث ما خیلی جلوه داره یکی مواحث زبورات که خیلی اساسیه. یکی مواحث خبر واحد این دو بحث عنوان دو بحث اساسی مفرد و اختصاص به شد هم نداره و کران عرض شدیم در اوائل کار که از پرن دومون بحث شناخت غاوی و توصیق و تضیف مطرح شد ترنیجا مجموعه معارفی که پیش ما بود حتی مثل لغت یعنی از زمان فرسیم مثلا که خود سید و برس مجموعه مکاله بیرین که ما در مجموعه دنیای اسلام داشتیم مثل لغت مثل شعر اینا تمام زیر مجموعه خبروافق برار گرفت و بعضها که تنقیه کردن حتی این قسمت ها رو هم هم تنقیه کردن یعنی وقتی اختادن به خبر کلیه یه خبرهایی که در اختیارشون بود چه در فهم بود در اصول بود در تفسیه بود چه در, بود، چه, در بود، چه در تاریخ بود کلن رو این محض اونطور نبود که به فهم باشه از بس در میان ماها یه مقداری که این قسمت ها بیشتر مورد بحث قرار گرفت فقه بود که در واقع وقتی نگاه بکنیم به مجموعه آثار اسلامی شامل فقه و غیر فقه بود همه موارد میشه و خیلی هم خوبه یعنی ما معتقدیم که بسیار خوبی خوبیست که مواحث شناخت خبر یا مواحث ظهوران در همه مهرن که امروز در حوزه های دینی متعارفه بررسی بشه اختصاص یک این خاصی مثل فقر نداره حتی در محور برآنی غیر از داده تفسیر من موقعه همی مثلا بحث به نام قراعات هم بگذاریم چون به ذهن ما میاده مدار نوی قراعات هسته مثلا به درستی نداره, نداره زیادش کمش. و اون تنها راهش بررسی تاریخی بسته هست. یعنی فرض که مثلا در کتاب مجموع بیان ادعای قرائتی میکنه قرائت فلان باز بینیم مصدر قبلیش چی بوده مصدر قبلیش تا برسیم به مصدر اولیه وقتی مخلی به مصدر اولیه برسیم با دعف های رو میشیم این زعف هست اگر بشه مثلا خود قرائات رو تمام قرائاتی که در آن شده همه رو با همین محیارهای خودییت قبر واخت از به اشکال مختلفش بعد بکنیم خیلی نتایج حجیب و غریبی پیدا میشه که خیلی از درعاها خیلی زیاد یعنی بیشتره. بیشتر بیش از نصف درعاها اساساً واقعیت نداره ثابت نیست که این دراعات هم چرا بوده دیگه من خیلی صحبت نمی‌کنم چون واقعا این بحث بحث پیچیده گذار فوق العاده است از که مرحوم شیخ انصاری همینجا مرحوم استاد البته استاد, استاد یه مناسب دیگری مرحوم شیخ فرمودم برای این که یک روایتی رو که در فقه وارد شده بررسی بکنیم من از این بحث میگم اونی که منحومشی بکنم یه را بیرفتن برای اینکه اثبات بکنن که مسئله یه خود خبر واحد توز مسئله اصول بنابرای که موضوع این اصول عدله عربعه باشه دست کردیم متعارف در کلمات علماءی اصول موضوع این اصول عدله عربعه گرفته بودن بعضی ها هم می گفتن نه و این وقت در میان شیعه جا گرفت میانه من بیان تحرسونت نگیدم که آیا مراد ذات عدل اربعه یا عدله اربعه به بسید دریجی یک اینه مرمومه صاحب قوانی یا هاشیهی به صاحب قوانی اون قوانی نهیم به اون چاپ جید شده نه اون چاپ قدی تصالتا این حاشیه در اون صحبه چاپ نشد حبای صحبه بند چاپ شده این هاشیه که مربوط بهادله اربعه است بعد چا... یعنی سر اون صفحه سه اون صفحه 9 چاپ شده یه چیز شده و صاحب هم با ایشان مخالفت کرده و طبعا اشکال دیگری که در ادله اربعه بوده، که موضوع علم واحد نباشه متردل باشه موضوع باید واحد باشه اینم یه اشکالی میگه این بحثی بوده که زیاد شده و انصافا نموصل به معنی نظام نحن شده از شافعی امسای شافعی شد سریع نگفته باشه که موضوع ادنموصول حجبه من عدله عربه حنوان حجب و مرمون شیخ اون تصور که موضوع ادنموصول عدله است سریع کرده موضوع حجب خبرواهی داخل در داخلی در بحثه و حصول رو کنه از کرده این نوستشون این بود که این گفتن مسائل اونهاییست که بحث میکنه از عوالات ذاتی وقت بحث خبر از عوارض و ذاتی قرآن و سنت و عقل و اجمع نیست ادعا شدید و معروف میشه که از این رابار سنتی که آیا سنت تصفد به خبر واحد یا نه خب این اشکال معروفی به شوارد میشه که بعد کردن کردن بیشونه و سعی کردن توجیه کنم نصافم توجیه رو میگذاره کلاسش اینه که سبوت جز عوارض ذاتی نیست اصلا سبوت جز عوارض جز عوارض غریب نیست هر معنایی که ما برای حوالظه بگیریم سبوت یک چی بگیم بدن انسان موضوع علم طبعه آیا بدن هست یا نه این اصلا موضوع این مسئله علمی نیست. نیت. آیا بدن هست یا نه این مسئله سبوت داری یا نه این اصلا مسئله روزه حوالظه ذاتی نیست توکیه شده کده مرموم آقای و آقای خویم سرکن جواب برن انصافا احتیاج به این جوابها نداره و اصولا ثبوت رو به هر نحوی که بخویش تصور بکنه مگر یک نحره دستکاری بکنید بگید ما به جایی که مکلف به سنت باشیم مفعول به خبر شدیم، این بحث رو عوض بکنید اگر به جای سنت ما خبر رو بگذاریم با تغییر بدیم یعنی ما بگیم مثلا ادله اربعه که خبره نه ای که سنت چون سنت یعنی ما سن نه رسول الله اون رو که پیغمبر قرار داده یا به اصطلاح معروفی قرار در زبان ما هست چه لا پول صحیفه امام معصوم رو اصطلاحا سنت میگن خب این که سنت ثابت میشه نمی‌تونه جزء عوارض اصلا جزء عوارض نیست جزاتی ذاتی چه غیر ذاتی حتی اگر مرات ثبوت اعتباری باشه اصلا ثبوت اعتباری جزء عوارض ذاتی و غریبی شده نیست اون چون اعتبار واسه تعلق بگیره رفت به عوارضش شده به خاطر همین به رضا این من خیلی موجز این یک صفحه من این دو صفحه ای که برای شما به این بیان دو موجه از گفتیم هم که رفته شده تو استاد تصریح نزده لیکن خوب دقت بکنی مگر اینکه قائل به یک نوع انقلاب بشی یعنی چی؟ یعنی ما مکلف به سنت بودیم حالا به خاطر خبر مکلف به خبر بشیم خوب دقت بکنیم ما تشریف اساسیدون به سنت رسول الله چون سنن به خیلی اصلا خبر میرسه دیگه تکلیف اصاسی ما الان به خبره. خب برای اگر رسد شد چرا اگر دلیل رو به جای سنت خبر گرسیم چرا حالا ما در این احوال خبر رو بررسی میکنیم احتمالا برمیگرده به به اصطلاح چر موضوع که جز تصوری است و جز مسائل ایل حساب نمیشه و الا انصافا مگر بگیم که مثلا خبری کو حجزه به این واسه این واسه چیزی که ما بگیم این بشه عوارض ذاتی که مثلا عوارض ذاتی اگه باشه आवाज غریب که اون هم انصافا مشکل میشه داشت. به هر حال این راه هایی که رفته شده و این بحثایی که در اینجا شده چون مسند ترمیم متعرض به اون نمیشه نقش خبر در اصول قطعا فوق العاده تاکید از اصل اینکه موازه ظهورات یکی موازه خبر. دو بحث اساسی در کلیه معارف ما هست تفسیر هست قراءات هست نفر هست اصول هست عقاید هست تاریخ هست و الی آخر. میشه این راجع به نقطه اول نقطه دو مرحوم برای ورود در بحث فرمان که ما اگر خبری داشتیم مخواییم بشه عمل رو کنیم از سه جهت بررسی میشه که صدور خبر که ایشون فرمان بحث و خبر واحد مربوط به اون میشه یکی از دلالت و ظهور خبر که نواحظ ظهورات متعرضه کنون میشه یکی هم جهت صدور که آیا او تقریه یا نه راجع به صدور خبر تو خب همین بحث خبر باحث رو مطرح کردن راجع به بحث دلالت و ظهور هم که مواحظ خودش، دو مبحث رو ما مطرح کردیم، یکی اینکه ظهور هست یا نه که مبارس قول لغوی بود یکی این که این ظهور مراده یا که این مبارس و ظهور بود گذشته. و اما مسئله سوم که جهت صدور باشه تغییر تربیر مرمو اما اوهلایی یعنی اما اوهلایی کسی صحبت میکنه در مقام بیان واقع تغییر بودن خلاف واقع ما میتونیم به اصل اوهلایی این مرحله سوم رو اصفاد کنن این خلاصه کلامی که در اینجا گفته شده مهم اصطادم ارده اصلا حدمتونی که اصل این مطلب درسته اجمالا بسید ما همیشه اعز کردیم که ما با گفتن یک نقش کلی و تا یک برنامه کلی نمیتونیم همیشه مسائل رو حل رو کنیم راجع به صدور خبر این سه بخش رو ما توضیح بدیم راجع به صدور خبر این که بحث خود خبر واضع بند راسته این همون راهی بود من چندبار توضیح دادم که اهل سنت رفتن من توضیحاتش رو ارز کردم بعد از انتشار فقه در حقیقت در اسلام اول بحث حدیث نبود و بعد بیان مثلا ده نفر، بیس نفر، سی نفر، چه نفر صحابه تا به این احادیثی نبود اولین بحثی که در دنیای اسلام اتفاق افتاد مواحظ فقهی بود و تفسیری یعنی ما از زمان صحابه تا به بعد به هم آراء فقهی داریم هم آراء تفسیری صورت این به طور کلی برای انسان آشنایی با این سیر معارف دینی خیلی لازمه از عوائل مواحظی که از سالهای 50 و شست و هفته نفرند شد تفسیر و فقه این دوتا اول بود این دوتا بحث خب حالا حصه نحی عمر هم بود اینشان در شده به بحث ها صحبت میکنید و جبه صحابه هم بود حالا حدیث به چه مشکلی مقتلاش هست که بر توضیح بودید و بعدها در مواحظ به اصطلاح چون با ابتعاد در زمان الله هی احتیاج به نقل حدیث بیشتر شد و انشالله توضیح شد تا بقیم ارز کنم بعدم خواهم بود. چون صحابه نوشتار نداشتن حالا یه خاطر عمر بود یا چی که بود هر عواملی بود یا چون بی بودن نوشتن درشون کم بود هر عواملی که بود حالا من به اون عواملش کار ندارم اونی که قدر متعقنه صحابه نوشتار نداشتن این قدر کل نوشتاری که الان سنت در صحابه نمی میکنن یکی کتاب عبدالله به سر امر یکی همه یک کتاب اسمال وحبه ابن از ابو خوریه صد و, و حدیثه که هست موجوده هم جزازانه چاپشتره هم در زمان خطب احرسالله اون کتاب عبدالله هم برسن از صحیفت و صادقه خب در روای تحرسامت موجوده ولی که من توضیح دم که توبات امام آمده از امام صادق همون محنش این محن صحیفه صادقهی منسوب به عبدالله ابن عمر آسن خب نوشتار نبود اون که موجود بود بیشتر جنبه حفظ داشت صحابه هم مختلف بودن یکی از صحابه یه چیز میبود. این اخلاق به تابعین رسید بعد از تابعین به تابعین خب یه مقداری تساهل تسامو هم تو این جهد بود و که نمیدونم چیه اخلاق عمومتی رحمه مثلا مشکل خاصی نداره. فرق‌های متعددی پیدا شد بعضها از برم دوم احساسا از سالهای ساعت شد یواش شواش به فکر تصیح و تنگیه احادی زخده از قدیم عوائل ساله سال های 140 تا حدود دویس دیگه تقریبا در این مدت بسته نصف هم زیادی حول خبر شد توصیح و تضیح و. یعنی به عبارت اخرى اگه بخواییم الان از خارج نگاه بکنیم از سال 140 ها طبقه رو به اصطلاح برد سی سال بگیریم بگیم 30 سال تا 40 سال روی کبراره می کنم. ما اگر 140 رو بگیریم پس مثلا چهار طبقه چهار طبقه روش کار نشده بود بعد چهار طبقه به فکر افتادن که الان ما چطور این احادیث سور زمان رسول الله افت بدیم دقیق کردیم اینکه اهمیت بس واحد اینا آمدن این چهار طبقه با خبر واحد پر کردن مثلا نیاز بحث خبر اینطوری طوری شد چنین چیزی مطرح هم مثلا, مثلا اگر صحابه نوشتار داشتن دیگه ایتویز به خبرواهد نبود بیشه این مثلا, مثلا این کتاب علیه این کتاب عمر این کتاب می کتاب ها رو می اوزن دیگه نیازی به خبرواهد نبود پس این بحث خبر واحد در حقیقت بعد از انتشار تفسیر و بعد از انتشار فرح از کردید دومی چیزی که در محور توجه و قرار گره تندیه مباحث حجر خبر واحد بود یواشواش اقبلش هم عرض برای توضیح عرض کردم علوم اعتباری طبیعتش اینه که داره کششه چون موضوع واحد ندارن علوم حقیقی از این جهت داره کششی نیستن ممکنه اون داره بیشتری پیدا بکنن چون موضوع واحد دارن چه به سه سال قبلم بدن انسان موضوعه شد الانشم بدن انسان <تصفيق> عوض نشده بدن بدنه فقط ممکنه الان عمق بیشتری فیلو بکنم عوامل دیگری قیلت گیاه ها موضوعی به ذهنشون بوده درستم به عمق امراض بدن موضوع عوض نشده موضوع یکیه چه موضوعش عوض بدن انسان ده هزار سال دیگم بگذاره همی طوره اما طبیعت و علوم اعتباری این نیست اونون به چون موضوع واحدی نداره و دنبال اهداف دیگریه هدف از اون بحث اولی این بود که آیا این سقرث داره و اولین کارها وثاقت و عدم وثاقت بود ببینید موضوع این شد اما حول این نقطه بحث, بحث, بحث. این سقرث این سرلیس این ببینید بعد یواشوا شما نه ای بابا یک نفری هست اسمش اصحاب بن جریری کی سقرثی نیست بحث تمیز مشترکات مطرح شد یا <تصفيق> شواش بحث طبقه مطرح شد آخه این در توبه او هست این کی میگه حسن بستی مثلا علیه حسن بستی علیه مؤمن دیده ندیده ثلاری او بوده درسته بوده هی این طبیعت علوم اعتباری است چرا علوم اعتباری دنبال اغراض و اهداف معینی است نه دنبال موضوع واحد معین از سالهای 150 شروع شد دقت بکنید مثلا سال 220 اینها ها یواش های صحیح نوشتن شروع شد وقتی معیارها آمه هم که مثلا سریه بخاری 250 و, و شیش وقتیشونه مسند احمد مثلا یک یه مسند احمد رو دو هزار حدیث داره در این سی هزار حدیث ایشون از یک میلیون و هزار حدیث رو استقراج کرد به یه عبارت ایست به چون دیگه تو بحث خبریم هی با شهایت خاریخه دو بیشتر اینجا بگیم عبارت در کتاب به ابن خلدون مقبل ابن خلدون میگه عبا حنیفه قائد بود که از احادث پیانبن 17 تا سریعه البته احناف قبول نم دارن احناف. چون ابن خلدون خود شعافی در مصرم بوده هنفی ها این مطلب قبول ندارن او اشتباه چون نه بعضی اشیعه هم نه نیست این نقل مال ابن خلدون از ابو حنیفه که ابو حنیفه گفته هیفته هزار بیشتر حدیث داره حالا اصلا راست باشی بالاخره گفته شده باشه ببینید ابو حنیفه متوفای 150 پنجاهه یه سال شده هست یا با داره ساعت امام صادق دو سال بعد امام صادق دقت بکنید منم کلمه رو بزنم حالا فرض 13 و شما احمد نهرند متوفای 241ه دیگه ما برای زیاد تاریخ یا رو باید بگیم که تاریخ داره شما من کشف بشتیم یعنی چیزی حضور سر سال شما نسبت بین دیمه تا یک میلیون و هسته چقدر در مثلا قرن اوائل قرن دوم میگه هیفته تا حدیث سریعی داریم وقتی میاد تو قرن سوم مثل احمد بن همبر احمدان نه هم خیلی سماه حدیث کرده خیلی عمرش دنگاه بود در حضات استاد داره شکل کرده هیچی در ایشون مجموعه حدیثی که نوشته یک میلیون هفتصد هزار حدیث از مشارقش نهار کرده که این سی هزار حدیث از اونا استفراد شده تصویل بکنید بین در سال تا یک میلیون هزار این وقت خبر پیدا شد خب خواهی نخواهید عرض کردم از قرن دوم به بعد خصوصا با پیشگچی چون از قرن اوایل ساله سال 60 سال 70 مخصوصا اولینشون رو شاید تا یه حدی محمد بن حسن شیبانی اصول ما در بحث اصول مطرح شدیم که احتمال داره شافعی هم نمیداره اصولیش از این شیبانی گرفته باشه محمد بن حسن شیبانی ایشون می‌نویسه بردم ساله هفته ساله اشتر رفاته شد ساله اشتر رفاته شد یواش شواش دو تا بحث با همدیگه طلاقی پیدا کردن یکی بحثه اصولی شد در اواخر قدر دوبه یکی هم بحثه رجالی و حدیثی شد نتیجه طلاقی یک نوع نتیجه گیری طبیعی شد نیست که شیخ رنجان بحث کبرای هجه خبر تو اصول آمند بحث صغراش تو رجال آن یعنی این طلاقی زمانی در این دو علم امیدن روشن شده این علمی که از قرن اول شروع شده بود در سال 56 در تفسیر و فقه و اینها اینها دنبال زیربنا دنبال اون تحلیل و زیربنا در مرحله تحلیل دو تا علم با همدیگه تصادف برد <تصفح> <تصفح> چه تصادف واقعا جامعه احتیاج داشت این دو سا ای با هم دیگه تلابی کردن اصول آمد از یکترن رجال هم از یکتر یه حدیث و رجال و در طبعات و این ها نتیجهش این شد در فخر هر دو شدن تأثیر گذار کبریاتش تو اصول این همینه که شیخ اینجا میگه ما کبرهای حجه خبر اینجا بررسی میکنیم پس این بحث از کی شروع شد از قرم دوم سغراش هم تو رجال حدیث شروع شد یک کبرا آمد و یک سغراش ولذا اینو علمی در حوزه های اسلامی پیدا شد هم سغراش معیل شد از سالهای ساله هفتا ساله هشتا کبراش رفت تو بسید سغراش هم آمد توی رجال و حدیث اینجا آمد گفت خبر صحیح حجزته اونجا آمد گفت که خبر صحیح اینه تبرید که راویش پلانی با پلانی باشه طبقه شرک اینه هی شروع شد علم رجاب توسعه پیدا کردن همچنین علم اصول چون علوم اعتباری دولوم روشن شد. هی توسعه پیدا کرد پس اون نیازی که در اواخر قرن دوم پیش آمد و منتعی شد به تدوین حصول و منتعی شد به تدوین حدیث و تشریف مثلا تعلیم کتب سه من ارز کردم کلیه کتب ها وفات معلقی نشون این شیشتا به بین دیلیست و تا سی صده. حالا تصور بکنید اگر امر به عکس می تعلیف تو قرن اول می چقدر کار خوب بود؟ تصور بکنید الان سه ها هسته احل سنت قدیم کردی نشون اگر مصنع احمد رو جز سه ها ندونیم چون نبیزن یا محتره مالک ندونیم حالا محتره مالک و مصنع تو چه کنا بنابرا مشهور شون کلیه سه ها سر. یکیش متعفی دوی سهنگی و شیشه که بخاری این شروع میشه تا سی سد شیش کلیه سه ها در این فتر زمانی ناشته شده <تصح> کلیه سه ها سر دقیقاً من میدونم برشن شد چی میخوام بگم؟ اگر پس این سه ها بله پنجه تا سر نمشته میشه چقدر کسی برمیگرد؟ اگر بنا بود ها به جای دیویست تا سیصد، سر تا صد نمشته میشه یعنی تو قرن اول نمشته میشه این همون ترنی کلیس که ایش ها در خلال بحث دارنده دار توضیح نم چنان وقتش اینجا نیست پس خوب دقت بکنی این یعنی اون وضع تاریخ اسلامی رو بدونید پس شیخ که میفرماید ما احتیاجی به حجت خبر واحد داریم در حقیقت کلام شیخ نیست این واقعیت از کی شروع شد قرن دوم و دلست هم هست ایمان اینا نیاز داشتن چون ها سال سبه پنجا کی باب این حلیثمان رسولله هست و چی جوری به رسولان. به دمان سبه وقتی نوشتای در اختیارشون نبود راهی جز رساقت راوی اختصال و طبقات دروغ نگفته باشه اشتباه هست این راه ها پیش هستن دیگه این راه ها پیش همه دقیق برمینی؟ خیدم ما اینجا کردیم این مطلبیه که مرمون شیخ را در کتاب و اصول هم هست اختصار بشه راست هم هست اما این یک نقطه ای داره اون نقطه اینه که در شیعه در سال شی اتصالش به زمان و رسول با وجه خبر حل نکردن این, این توجه نکنم آلم های ما لذا ما همیشه عرض میکنیم ما در تحقیه های خودمون باید حصائص مذهب را هم در نظر بگیم سال 150 فرص که معطع مالک سند داره منبار مثال اون نیازه به اصناد داشته اما فرص که این مثال مثال زراره که اون هم حدود 150 آفاتشه اون دیگه سند نمیخواست زراره نگفت سأل تا ابا عبدالله فقال اون این رابطه زمانی رو با اسمت امام حل کرده روشن شد مطلب کجا شد؟ <تصح> یعنی اونا آمدن این بحث اصولی رو مطرح کردن که استلاحاً اصول فقه شیعه در اینجا آمد مسئله اصول اقاعد یا کلامی رو مطرح کرد این این تفاوت ما با اونها رو روشن می‌کنه چون لازمه که باید دقت کرد این سر این که یک مقداری هم اخباری ها در آمدن من مخالفت کردن با قواعد این قواعد این تدوینی که نهایتاً در قرن دوم شده اثر کردم نهایتاً که شیعه در قرن هفتم شد هشتم شد انلامه این تخسین حدیث شروع کرد یه 2 سال یا 300 سالی این اون اخباری ها در مقابل این قیام کردن و اونا بیشتر این بود که میخواستن طبیعت حدیث شیعه رو از حدیث اهل سنت جلا بکنن هدف اصاسی این بود حالا تحلیلاشون من مسئله و غیره می کنم می یا نه لذا این نکته رو خوب دائما در نظر داشته باشید ما این مشکل رو داریم الان هم با اهل سنت که بحثیم کنیم خب انصافا یکی از اشکالات اونا قدیمند و حدیثن که شما مسادر ما چون رو با مسادر رجالی حل نکردیم اینو بعد مونو توضیح بدیم ما با اعتماد بر یک اصل کلامی که اسمت را این میباشه حدیث سقلین و غیره آیه تکیر ما بر مبدای اصل کلامی این فاصله زمانی رو به نحوه دیگری فی کردیم راسته ما به احتیاج به صدور داریم که این فاصله زمانی رو به نحوه دیگری فی کردیم اون نهره که پیششی آمد نوشتن آثار و تعلیفات از احمه علیه ما بود بعضها رو این آثار بیشتر کار کردن چون اهل سنت محیط اجتماعی سیاست دولت پول ارتش نمید بیت المار همه چی با اونها بود که احمه جمعه جماعت اوضاع خلیفه خیلی راحت بودی کارشون خیلی شیعه چون در اقلیه بود در طبیه بود در شرایط سخت بود اونم با اون زمان شرط اون زمان در نظر میگین آن بخواد یک نوشتایی رو تا از مدینه بیان تا مدت ها به قوم برسه اون درسته درست نیست اوضاعش چی بوده مقارناتش واقعا این شدت هایی که بر شیعه گذاشت منشه این شد چیه شیعه به جای اینکه بیشتر بیاد روی جنبه تکسر رجال کار بکنه. بیشتر تعمق خود متن و مصدر رو حساب کرد آمد تعمق رو مصدر قرار داد. مثلا یک کتاب و سرات حریز بود ممکن بود مثلا کل روازش به چانفر پن نفر دارستم این تلقیه به قبول شد دست دخت به شیعین قبول کرد بیشتر کار رو, رو این انجام دادم نسخه شناسی کتاب و چون کتاب سرات کتاب زندگی روزمره شون بود چون نماز وجود این کتاب منشع شد که به جای اون بحث های طبیل و عریضی که اینها در رجال داشتن یه سنخه بحث های رو مصرف رو ما مجموعه این بحث ها رو تحلیل فهرسی این اصطلاح تحلیل مالو خود ماست ما اصطلاح همون مرادمون از تحلیل اینه مجموعه جهدی که اینها به کار بردن کوششی که اینها به کار بردن برای اتصال زمان خودشون مثلا 150 و افتاد زمان رسول الله به اعتبار حال روات اسمش رو تحلیل رجالی گذاشتیم. تحلیل رجالی تحلیل در اینجا مراد اینه مجموعه کارهایی که شده حالا رجال هست حدیث هست اناوین دیگه هست طبقات هست هر چی که هست مجموعه کارهایی که شده برای اینکه به حسب راوی و به حسب حال روات سخن رو در سند قرن اول به زمان رسول الله این مجموعه رو بشینیم تحلیل را جاری و مجموعه جهودی که شیعه به خصوص، گویا سنی هم دارن اما شیعه بیشتر سنی هم داره فهمونو گفت مخرج کرد در رسوندن این به زمان رسول الله که اعتماد بر نوشتار بود نه بر راوی بر خود کتاب بود نه بر راوی این مجموعه در صدورش این فرستی مراد ما از فرستی اینه پس به نحو اختصار اینی که مرحوم شیخ می‌فرماید ما در بحث صدور نیاز به علم رجیان به خبر واحد داریم این درسته اجمالا درست بسیار از کردیم این نیاز به خبر واحد و بحث خبر واحد کبرن و سخرن این بیشتر در محیط اهل سنت شد و بعده هم در کتب عهد سنت آمده. در میان شیعه از این دیدگاه کمتر مطرح شد بود اما کمتر مطرح شد در میان شیعه از قرن هشتم اینطور شد و بعدم ادامه پیدا کرد این منشه شد که عدی از علماء تصور بکنه که این قسمت دیگه مثل, مثل اهل سنتیم نه در مرحله صدور که اینجا مستازم آوردن از سریم کرادن ما به دو تحلیل نیاز داریم یکی تحلیل رجالی که در این مقدار, مقدار بسیار زیادی با اهل ونت نزدیکی ما خیلی چیزی تفاوت کمیم. یکی تهیل فرستی که اونها کم دارم و ما زیاد داریم. برای صود ما به مجموعه این دوتا نیاز داریم این یک وقت رتنداری میزن چون برای قبل از ساعت 9م ده که آن به کارشون بریم. نقشه دومم که هستیم که در این تقسیم بندی متاسفانه جای بحث مخن و خالی کردن آ. این نه مرمون شد، نه آینه که بعد از, آمد، بعد از شیخ آمدن بعد از صدور رفتن به دلالت بحث مطم رو مفرح نکردن چند بار ما این مطلب رو مطرح کردیم و در میان اهل سنتم مفصل تو درایت حدیث بحث مطم هست انصاف قضیه با در نظر گرفتن شواهد تاریخی قطعی ما نیاز شدیدی به بحث مطم داریم سر اینکه که اصحاب ما تا... تا... تا... یه رو این کار نکردن نه اینکه خدای نکرده تساهل اصحاب باشه من توضیحاتش رو کردم اصحاب ما نظرشون به حدیث بیشتر مضمون حدیث بود اگر متنم یک تشویشی داشت نداشت اون رو زمینه میکردن به عمل اصحاب و فتاوای اصحاب خوب دقت بکنید یا به تعبیر مرموم های گروزی یا های که از عواملی که تالیف جامال احادیث در مقابل وسایل این همین بود ایشون می‌فرماند وسایل یک مجموعه حدیثی است که نه از زاویه حدیثی، از زاویه ما نیاز داریم یک مجموعه حدیثی از زاویه حدیثی درست این مطلب مکرسیده یعنی صاحب وسایل عنوان باب داره حدیث میاره میگه کافی بعد میاره واسطه شیخ مثلا رواه شیخ مثل حالا مثلا ولی اصرار میزنه نگام می‌کنه یا نه و من زمده این مثل رو فرق روشم حالا ما وقتی مراجعه میکنیم بیدیم مثل هم نیستن نحوه همون نیستن چرا این تصاحل نیست؟ من کرا نهاز کردم چون صاحب و صاحب بیدیم همیشه ایشون عنوان عبا بشه فتواه فقهی قرار میزه ایشون مجموعه حدیثی رو به لحاظ زاوی فقهی و فتواهی نگاه کرده. ما اگر مجموعه فقهی تعلیف بکنیم فرق بنویسیم از زاویه فتوایی همینطور میشه خیلی دیگه اعتنام به مرد نمی کنیم چرا؟ چون مرد کم و زیاد باشه مهم نیست قمده فتواست اما از که انصاف قضیه ما در شناخت حدیث به زاویه حدیثی به و حدیث نیاز داریم این نیست که بخواهیم به فتا نگاه بکنیم. درسته در شیعه اینطور بود یعنی انصافا یه مقدار مشکلات شیعه این اخت اما به هر حال این قسمت باید کاملا تنقید و تفسیح و توضیح داده بشه و نذاب مباحث محث به نظر ما باید کاملا زنده بشه و تا اون زمان این توشینده زمانی که خدای بریجردی بودن ایشون اختلاف محثن روایات رو هم فقط در و اروعه در جمال آحادیث درست دادون بررسی بکنن ناسه یه حدیث در کتاب قصاد صدوق بود همون حدیث در فقیه هم بود یا مثلا تو کافی هم بود. ایشون بین مطنه غیر کتب عربعه رو گفتن دیگه مهم نیستن مطابقات حدیثی در صورتی که سریعش اینه که کلا متون باید مطابق باشه اگر این نقلی که من شنیدم ناقل ناقلونی برم اگر درست باشه حق اینه که ما در کلیه مطابق چه کتب عربعه چه غیر کتب عربعه برای شناختن زبایی حدیث و بعد آثاری که برش بال میشه چون یک مقداری از آسال که فقط فیغ نیست مثلا من اعزت کردم همین حدیث محجب الله علمه و عنالعباد مرحوم کلین نه رو تره محجب الله عنالعباد صدوق با همون سند در کتاب توحیدش نهاره محجب الله علمه و عنالعباد خب بعضی از آین آن معاصف نمیشه اگه محجب الله عنالعباد باشه یه بر برایت شرعی میکنه محجب الله علم و باشه نمیکنه. و خیال کردن تو اون از نسخه بدله توی نسخه اینطوری توی نسخه نه این نسخه بدن نیست توی کافی ما حجج الله عن العباده تو کتاب فقید تو کتاب توحید صدو و تو رابطه توحید هم هستند در واقع توحیده ما حجج الله و علمه و عن العباده با یک سنه این اینطور نیست ما دائما توی بحث متنی خیال بکنیم بکنی در بحث فقیه یه حدیث این آقا مثلا مدعون شه اینکه برای نیست الا بگین حدیث مثلا حدیث 8. خب اشکال هم میکنه با که بعد نس... در نسخه این طور خب یه نسخه این طور این نسخه این در کافی علمه ها افتاده در طاق توحید صدوق آمده و بلکه من معتقدم صدوق متعمقن آورده چون همون مصدر کافیه چون ما این رو اثبات کردیم که طریقه صدوق در ترسیه اقادیست با کلیمی فرم کنه مرمون صدوق رو نکتهی آورده که ما خود بگه این مکنی که کافی آورده، این مطمئیشون خرابی داره خلل داره سوابش ما حجب الله و, علم و علمه و نه ما حجبه این کلمه علمه یک روایت واحد سند واحد پس این نفتر رو خوب دقت بفرمایید این که مرحوم شیخ و دیگران بحث متن رو نیوردن آقای خوی هم نیوردن بیه همشون نیوردن موسیقی ملاحظه این بیگر برنن یک سنت تو خوضایی موسیقی یه آقای بروجیدی هم بنابرای و این باید انصافاً روش کار بشه اصولاً احادیث به دقت و با حساب دقیق به لحاظ متن هم بررسی بشن بحث سومی رو که یعنی دوم به تعبیر اون و سوم به تعبیر ما بحث دلالته که ایشون فهمیدن بله ما در بحث دلالت مقدار زیادی از مباحث ظهورات رو در جای دیگه تنقید کردیم یه مقدارش رو در لغت نوشتند یه مقدارش رو تو مباحث اصولی آوردهن از کردیم در مباحث اصولی یک مقدار از مباحث تحلیلی لغتی رو آوردن که این در بعض از خطب لغت اونم نه اون مقدار تحلیل مخصوصاً مباحث حیات رو مثل حیات مشتق و معانی حرفی و حیات جمله شرکی و وصفیه و اینها انصافاً تو کتب اصول خیلی روش بحث کردن مفردات و هم قالبا در لغت رو آوردن خوبه انصافت لیکن باز این مجموعه باز به نمیخوره اولا به احتمال بسیار قبی بعض الفاظ از معنای لغتیش خارج شدن دارای بار فقهی هست و مشکل کار من چند بار توضیح دادم یه مشکل حساسی که ما در این و این مشکل مثلا در قرآن یک جور در روایت پیغمبر یک جور در روایت اخلافه این بحثی هست که اصولا منحیص المجموع تعبیر تعاویر قانونی حالا چی میخواد قانونی در اصول باشه یا در شق باشه در متون روایات ما متعارف نبوده. لذا یک معنی فقهی یا یک معنی حدیثی که داریم این رو باید معنا بکنیم. مثلا همین دیروز خوندید یا مثال، مثلا حال کل روایت شما یعنی معظمش اینطوره. مثلا خود به من شهر بین حسابه. ببین تعبیر تعبیر تکلیفیه. خود تعبیر تکلیفیه دیگه. تکلیف میکنی شما این کار رو بکن خود رو یک نوع امره امره یه نوع برد اخش شما چی میگین میفهمنی خود به مشتر یعنی مشهور خود جده. یک تعدیر تکلیفی رو برمیزدیم ترجمه میکنیم یک تکلیف به یک تعدیر وزعی تعدیرش خوده یعنی بگیم نیستیم تو خود به مشتر وزعی بعد هم می توانیم فعن المجمعلی لاره بفی این لاره بفی ظاهرش نفیه لاره بفی دیگه نیست باطنش اثباته یعنی فعن المجمعلی حجتان لاره بفی ولذا ما یک مشکل جدی داریم همین بحث لازره که معروفه میگن اگر یک معامله زرهی بود چاره توش خیار قرار میده. چون موقت لازره ما در خیار قرار روایت نداریم شما یه جنسیده که جنسیده از آسانه به شما فرودن بیز آزانه میگید آخی آرگه هم میداریم تماس این به لازره این دقت بکنیم این اشکالی که از زبان شیخ انصاری تو فقه ما آمده اصول ما که لازره مفادش نفیه یعنی مفاد این است که اون افوبل اقود دیگه نیست اما مفادش اثبات خیار نیست بودیم تعبیر لازره اما شما وقتی به فقه اسلامی از قرن دوم تا الالآ در کلمات قدم های اصحاب ما در کلمات سنی ها در کلمات زیگی ها من در بحث لازرر شواهدش ارز کردن نگاه میکنی اونا با لازرر اصفاق میکردن حالا تو اصول فرست کن شما یک جزء نماز رو فراموش کردیم ازدهی میانه با رفت انعومتی انسیان بقیه نماز درست. خب این اشکالیست که الان من اون آینه داره میگه رفعن اومتی معناش نفیه یعنی این جزء منصی واجب نیست معناش این نیست که بقیه اعزا واجبه خوب لگم این منصی رو برمیداره اثبات تکلیف به بقیه اعزا اینا رو تقیل میگن تو اصول اون نقطه فرمیش نکته فندیش اینه که ما در بحث ظهورات و به این سادگی نیست بروندن ما یه مشکل داریم اون مشکل اینه که گاهی تعبیر تکلیفی است مراد <تصفيق> لسان لسان نفریه مراد اثباته من ارسن شما یه بحث تمام شما یه کلمه بعد از ارسن شیان قدید نگاه بکنید نظام دوم باب بسیار مهم یکی شفعه یکی خیار رو بلا زر تو نصوص در اونجا کمه با لازنر اثبات حق شفه این که و آثاری که حق شفه داره و خیار با آثاری که حق خیار داره خب این بحث آماده که لازنر مخوادش نفیه مفادش اثبات نیست این بحث نیست این در حقیقت همون تعینایی بوده که ما در ز... پس در زمان همه به این مشکل اساسی رو بوده اگر ما خواهیم تحصیل علمی بده. به خب اون این که تقابیر ما اصل ذاتا یقین به شک ظاهرش ندیه اما میگن استصحاب مرادش اثباته اون یقین به حدوث هنوز هست ببینید مفاد استصحاب اینه توسعه یقین لسان لسان نفیه مراد جدی اثباته تو یقین به حدوث داشتی اون یقین نگهدار ببینید اون لا تنقض یعنی یقین نگهدار یقین به حدوث عین یقین به بغاز. مولا یعنی حدوث. یقین حدوث تعبدن یقین به بقاست ان شاء الله در خلال بحث ها بیشتری رو ارائه کنم و الله